داستان سوپاراکای دریا نورد در روزگاران بسیار دور در بندر باهاروکاچا، در سرزمین دریا سالار بزرگ بهارو پسری زیبارو و زرین چهره به دنیا اومد که او را سوپاراکا نامیدند سوپاراکا در شانزده سالگی در دریا نوردی به استادی کامل رسید بعد از اون موقع مرگ پدرش دریانورد بزرگی شد و پیشه دریانوردی رو دنبال کرد و چون بسیار دانا و خردمند بود هر وقت بر عرشه کشتی بود اون کشتی گرفتار مصیبت نمی شد. اما در گذار زمان تازیانه پیاپی پی آب شور بینایی هر دو چشمش رو از بین برد از اون به بعد هرچند دریا سالار شده بود اما پیشه دریانوردی رو کنار گذاشت و به این اندیشه که با خدمت به پادشاه روزگار بگذرونه نزد او رفت. شاه او رو به عنوان ارزیاب به کار گماشت و از اون پس او زیباترین فیلها، ها و جواهرها را ارزیابی کرد روزی فیلی رو که به رنگ صخره‌ای سیاه بود برای شاه آوردن به این نیت که به عنوان فیل تشریفات به پادشاه خدمت کنه شاه با دیدن فیل گفت که اون رو به ارزیاب من نشون بدین او داناست بنابراین فیل رو نزد سوپاراکا بردند او دست به تن فیل کشید و گفت این فیل مناسب تشریفات نیست چون پاهای عقبیش کوتاهه. ظاهرا وقتی به دنیا اومده مادرش نتونسه اونو بر شانه نگه داره و به همین دلیل بر زمین افتاده به نحوی که پاهای عقبیش بد شکل شده اونا فیل رو برگردوندن و چون واقعیت رو متوجه شدن فهمیدن که ارزیاب دانا مطلب رو درست حد زده وقتی که شاه ماجره رو شنید خوشحال شد و دستور داد هشت سکه کوچک که مبلغی ناچیز بود بهش بدن. یه روز دیگه اسبی رو پیش سوپاراکا آوردن تا به عنوان اسب تشریفات در خدمت شاه باشه. سوپاراکا اسب رو به دقت تیمار کرد و بعد گفت این اسب شایسته تشریفات نیست. چون روزی که به دنیا اومده مادرش مرده و چون شیر مادر به اندازه کافی نخورده رشد نکرده. این حرفش هم درست از کار در اومد. وقتی شاه اینو شنید باز هم خوشحال شد و دستور داد هشت سکه کوچیک براش بفرستند یه روز دیگه کالسکای را آوردن که کالسکی تشریفات شاه بشه شاه دوباره دستور داد که اون رو نزد ارزیاب دانا بفرستند سوپاراکا بر بدنه اون دست کشید و بهشون گفت که چون از چوب توخالی ساخته شده شایسته نیست کالسکی تشریفات باشه و بار دیگه داوری او درست از آب در اومد و شاه فرمان داد که هشت سکه کوچک دیگه به او بدهند بعد یه روز قالی نفیسی آوردند شاه فرمود قالی رو نزد سوپاراکا بفرستند ارزیاب بر این طرف و اون طرف قالی دست کشید و گفت جایی از اونو موش جویده و سوراخ کرده قالی رو وارسی کردند و دیدن همینه که سوپاراکا گفته به شاه خبر دادند شاه هم مثل قبل خوشحال شد و دستور داد هشت سکه کوچیک دیگه به او بدن سپاراکا آرام آرام با خودش فکر کرد شاه بعد از دیدن شگفتی از این نوع دستور میده که هشت سکه کوچیک به من پاداش بدن این دستموزیه که به یه آرایشگر ساده میدن در حقیقت زندگی من مثل یه زندگی یه آرایشگر ساده داره میگذره هدفم از موندن در خدمت چون این پادشاهی چیه؟ پس به دیار خودم برمیگردم. و با این فکرهایی که در سر داشت به بهاروکاچا بازگشت در مدتی که در بهاروکاچا زندگی می کرد چند تا بازرگان که کشتی ساخته بودن و در فکر انتخاب یه ناخدا بودن به یاد آوردن که هر وقت سوپاراکا در کشتی بود اون کشتی هرگز دچار مصیبت نمیشد چون او کار کشته و پرمعلومات بود و در این زمینه کسی پیدا نمی شد که بیشتر از سوپاراکای دانا چیزی بدونه هرچند کور بود دانا بود بنابراین پیش او رفتن و گفتند ناخدای ما باش او هم گفت دوستان عزیزم من کورم چطور میتونم ناخدای شما باشم؟ اونها جواب دادن با اینکه نابینایی ولی در میان ما از همه بهتری بعد از اینکه بارها و بارها از او خواهش رو تمنا کردن گفت حرفی نیست حالا که جدی و پیگیر هستین من ناخدای کشتی شما میشم و سوار کشتیشون شد. اونا بر فراز دریا بادبان بر و هفت روز بدون هیچ گونه پیش آمد بدی سپری شد. ناگهان بادی بی موقع برخاست و کشتی بعد از چهار ماه بر های ناشناخته سرگردان موند تا اینکه به دریایی رسید که کهورا که مالا نام داشت. درون دریا ماهیانی بودند که تنشون به تنه انسان شبیه بود. پوزه های شمشیرمانند داشتن و پیاپی پی از آب بیرون میپریدن و دوباره به درون آب شیرجه میزدن. وقتی بازرگانان اینو دیدن از سرکرده بزرگ خودشون پرسیدن که نام این دریا چیست؟ آه سوپاراکای داننده. بازگو چیست نام این مردان با لبانه دراز چون شمشیر چیست نام شگفت این دریا که در آن قوطه میخورند آنان؟ سر کرده ی بزرگ در برابر پرسشی که اونا کردند، دانش پرمایی دریا شو به خاطر آورد و اینطوری پاسخ داد اینکه ای تاجران کشتیران کذبه ها رو به نیت سود آمدید این دیار و این دریا نام آن نیست جز که بپرین در اون دریا الماس هم پیدا میشد سرکرده بزرگ با خودش فکر کرد که اگه به اونا بگه این دریا دریای الماسه اونا از سر حرص اونقدر الماس جمع میکنند که کشتی رو واژگون میکنه بنابراین در این باره چیزی به اونا نگفت و دستور داد که کشتی رو متوقف کنند بعد ریسمانی گرفت و توری به سرش بست و به آب انداخت و توری وانمود کرد که میخواد ماهی بگیره وقتی تور رو بالا کشید دید پر از های درخشانه اونا رو به انبار کشتی برد و برای اینکه جاشون بده بعضی محموله های کم ارزش رو به دریا ریخت وقتی کشتی از اون دریا میگذشت به دریای آگیمالا که مثل آتش سرکش و فروزان یا آفتاب نیمروز میدرخشید رفتند بنابراین این بازرگانان از ناخداشون پرسیدند آه سوپاراکای داننده بازگو چیست نام این دریا که چه خورشید گرم و سوزان است سرکرده بزرگ اینجوری بهشون جواب داد اینا ای تاجران کشتیران که از بهارو کوچا به نیت سود آمدید این دیار و این دریا نام آن نیست آگی آگیمالا در این دریا هم طلاهایی بود که روی هم کپه شده بود بنابراین سرکرده بزرگ مثل دفعه پیش طلا جمع کرد و اونا رو به داخل کشتی برد. بعد کشتی از فراسوی اقیانوس گذشت و به دریایی به نام دادهیمالا رسید که درخششی سفید به رنگ شیر داشت. بازرگانان از ناخدا پرسیدند آه سوپاراکای داننده چیست نام این دریا که سفیدی به سان شیر بود و به مانند خامه باشد سفت. سر کرده بزرگ دوباره بهشون گفت اینکی ای تاجران کشتیران که از بها رو به نیت سود آمدید این دیار و این دریا نام آن نیست جز داد هیمالا آنچه در این دریا جمع آمده بود نقره بود بنابراین سپاراکا مثل دفعه قبل کمی نقره جمع کرد و توی کشتی انبار کرد بعد از اون کشتی دور شد و به دریایی به نام نیلوانا کوسامالا رسید که مثل کشتزاری از علف کوشای تیره و تار یا ذرت رسیده به نظر می اومد. بازرگانان از سرکردشون پرسیدند آه ای سوپراکای داننده بازگو چیست نام این دریا که چونان ذرت و گل کوشاست؟ کرده یه بزرگ به اونا گفت اینکی تاج رونکش ایران که از و کوچا به نیت سود آمدید این دیار رو این دریا نام آن نیست جز کوسامالا این دریا خوشه‌های زمورد درش پیدا میشد سوپاراکا دوباره به همون روش قبل کمی زمورد بیرون کشید و در کشتی انبار کرد بار دیگر کشتی پیش رفت و به اقیانوسی به نام نالامالا رسید که مثل جنگلی از نی یا خیزران بود بازرگانان مثل قبل از سرکرده خودشون پرسیدند آه ای پاراکای داننده نام دریای پیش رومان چیست که به مانند جنگلی از نی یا به مانند خیزران جاریست سرکرده بزرگ گفت اینکه ای تاجران کشتیران که از بهار و کچا به نیت سود آمدید این دیار و این دریا نام آن نیست جز نالامالا. در این دریا میشد شد مرجانهایی به رنگ خیزران یافت بنابراین این دفعه هم سوپاراکا به سختی کمی مرجان از دریا بالا کشید و در انبار کشتی جا داد وقتی بازرگانان از نالامالا گذشتند به دریایی رسیدند به اسم والاباها موکاها در اینجا آب پیاپی مکیده میشد و دوباره از همه طرف فوران میکرد و مثل دیواره های ای محکم گردا یک طالب عظیم به چشم میخورد. چنان که به خاطر خیزش موجها به نظر میرسید یه پردگاه غولاسا وجود داره همچنین صدایی وحشتناک به گوش می‌رسید، صدای صدایی اونقدر بلند که گوش رو کر می و قلب رو از حرکت باز می‌داشت. وقتی بازرگانان این همه را دیدند از سرکرده بزرگشون پرسیدند باز پرسیم از سپاراکا کنون نام این دریای وحشتناک چیست که پر از آوای غولان و پریست سرکرده بزرگ برای آخرین بار بهشون گفت اینکه ای تاجران کشتی ایران که از بهارو و کوچا به نیت سود آمدید این دیار و این دریا نام آن هست والا هاموکاها بعد هم بهشون گفت دوستان من اکنون که کشتی شما به دریای والا به هاموکاها رسیده هیچ راهی برای بازگشت وجود نداره وقتی که این دریا کشتی رو در چنگ خودش بگیره اون رو تا نابودی کامل میکشونه. حالا دیگه اون هفتصد نفری که از همون اول سوار کشتی شده بودند در حراسی عظیم از مرگ به سر می بردند و خیلی میترسیدند. بنابراین یک صدا به طور رقتباری شروع کردند به گریه و زاری و گریستند و همچون زاری ارواحی که در اعماق دوزخ می سوزند عشق ریختن و ناله کردند. بعد سرکرده بزرگ با خودش فکر کرد که هیچ کس او قادر نیست امنیت جون اونا را حفظ کنه و تصمیم گرفت که با توسل به ایمان خودش اونا را نجات بده. بنابراین بهشون دستور داد دوستان من هرچه زودتر منو توی آب معتر بشوید و وقتی به من لباسهای نو پوشوندید دید پیاله ای پر از غذا آماده کنید و منو در سینه کشتی بگذارید. اونا فورا هرچی رو که فرمان داده بود انجام دادند بعد سرکرده بزرگ پیاله رو با هر دو دست گرفت و در سینه کشتی ایستاد و پس از عبادت این اشعار پایانی رو خوند. هم از آنگه که مرا یاد آید که شدم بهره بر از عقل و خرد نزدم دست به آزاری هیچ. باشد اکنون ز صدق سخنم کشتی از مخمسه جان در ببرد. کشتی که تا اون موقع چار ماه بود که در دریاهای دور راه می پیمود، انگار به نیروی معجزه آسای حقیقت یک روزه به بندر بحاروکاچا رسید و نه تنها به بندر رسید، بلکه در خشکی هم رفت و درست دم در خونه ناخدا فرود اومد. بعد سرکرده بزرگ تلا، نقره، زم و الماس و علماسها رو میان همه تقسیم کرد و گفت دوستان، با این سنگهای قیمتی گنجینه کافی دارید دیگه به سفر دریان نرید این سخنان رو از روی دل به همشون گفت و تا آخر عمر همچنان به رفتار نیک و ارزشمند خیش ادامه میداد داد و سرانجام به بهشت راه پیدا کرد